اقرأ بسم رب کل لذی خلق خلق الانسانه من علق اقرأ و رب کل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسانه مالم یعلم شنوندگان عزیز امروز از بیمانند مردی دم میزنیم که مرتبتش فروتر از آفریدگار و برتر از همه آفریدگان است

روز برانگیختگی برترین مردی است که خداوند در بارش فرمود اگر تو نبودی آسمان ها را خلق نمی کردم روز بعثت پیامبر بزرگوار روزی است که دفتر دین و دانش و مردمی پیش چشم انسان ها گشوده شد و در ظلمانی ترین زمان خورشید محمدی بر تاریکخانه شرک و نادانی و رذیلت

نور یکتا پرستی و دانش و فضیلت پاشید ما در چنین روزی به زاعتی جز تقدیم شاتباش های پرخلوس و سمیمانه و ذکر فضائل خاتم پیغمبران نداریم به همین سبب چند تن از دوستان محقق و شاعر گرده هم آمدهاند تا با ذکر محامدش به پیشگاه سرور کائنات عرض عدب کنند

این سروران عزیز که به ترتیب حروف علف با به معرفیشون میپردازم عبارتند از آقایان سید عبالغاسم انجوی شیرازی معروف به نجوا سید زیاودین سجادی استاد محترم دانشگاه و حسین پجمان بختیاری و ارادتمند دیرین مهدی سوهیلی همچنین برای شادمانی بیشتر شنوندگان عزیز

در جای خود از هنر هنرمندانی ارزشمند که هم اکنون در اینجا حضور دارند بهره خواهیم شد خب دوستان عزیز جناب پژمان جناب اینجلی جناب سجادی ما بهترین این است که خیلی خودمونی و به اصطلاح با شورا حالی که داریم بدون قرارداد با هم صحبت کنیم

و من نمیدونم از کی شروع کنم به ترتیب سین، به ترتیب سیادت نه خیر به ترتیب پیش کسوتی استاد پشمان صدوب فرمان حضرت علی در این باره مطلعی میخواد بفرماییت همه مایدن که از جنوالی بشنون و اشنوالی بشنون بفرماییت البته بر شما دوستان عزیز پوشیده نیست که من بسیار محجوبم خشبی <تصفيق> به افراد دارم

و همین حج باعث میشه که و یک محفلی بخواهم شحبت بکنم به توتپته میفتن و نمیتوانم خود همینم بر ملاحط شما از حسود و استفادتونم بله خوشبخت هم که جناب آی تبریک این اید سعیز قبلا عرض کردن از طرف خودشون ما, و و... ما. زبان ما بله البته این نهابتی از دستان ترجمان دو. ارازت همه ما بودن دیشون امروز که

به که حاضر بشارم در این محفل تصادفا دیوان طبیب اسفحانی رو میخوندم بدون اینکه که قصدی داشت روشم لای کتار رو باز کردم گویا شاید این هم خوده از میکنم نظر محذت باشه

که برخوردم به قصیده از قصاید او که در مده رسول اکرم بهتر این که خودم شعر خودم رو به یا مدهب دیگری رو همین ای که بسیده و استقای به جا بیده بسیار و حالا با اجازه شما شروع میکنم موزه. البته نه تمام قصیدهش چون مفصله ولی یک مقداری شده به عرض میرسنه خیلی موانایی ببارمین هاشا که تشم بهر طرف ساغر جمع را

از غم چه شکایت من خور کرده به غم را حیحات کزاییام حیاتش به شما روزی که نیابم به دل آسیب علم را ای اشرتیان این همه انکار غم چیست ای اشرتیان این همه انکار زغم چیست رفتم به ششانم به شما

لذت غم را اون قدر شناسم که چو شبها ستم و غم سازند به سرمنزل من رنج قدم را از زوغ سنم بوسه و بردیده گذارم شکرانه اون پای غم و دست ستم را از بست که دیرین رفیقان موافق،

دانیم غنیمت من و غم صحبت هم را زنبیم که افتد به میان طرح جدائی غم دامن من گیرد و من دامن غم را زنبیم که افتد به میان طرح جدائی غم دامن من گیرد و من دامن غم را دوشینه تپنهانز خلد بود خیالم

تا یاد کنم چاری کاوی غم را رفتم به خرابات و چو پیر خردم دید بر پای خم افتاده و در باخت دم را گفتا که ز تحجره جم دل نگشاید. شاید ز کف ساغر و بردار قلم را اوراق معانیت فراموش و تو خاموش

مبسند از این بیش نگهبانی دم را تاری دو سه زلفر سخن تش شیرازه کن دفتر پاشید زهن را این نقمه چشو گوش زد شاهده طبعا بگذاشت در این عرصه دلیرانه قدم را گفتم باید به که به آرایش عنوان متحی کنم و تخته بدم فخره

ما هم با آل محمد تز قرب شرف افزرده حرم حرم خیلی خیلی لذت بردیم و حالا عیسیلی خودتون حالا بفرمایید یه چیزی بفرمایید تا ما گرم بشیم و به سخن بیاد حضرت من انتخابی داشتم از فریدالدین محمد عطار نیشابوری البته عطار یه قصیده درباره خاتم انبیا داره

با این مطلع سبحان قادری که صفا تشرید کبریا برخواه که عجز میفکند عقل انبیا و یک ترکیب بند و من از اون ترکیب بند باز عبیاتی خلاصه کردم که قلب و دل باشه و مختصر و این ابیات خوب اون ترکیب بنده بفرمایید. فدا که عبی و عمی اینه تمشی براق آمد مگر بر برعزم عرشی

کرا چه عالم و چه عرش و چه فرش که ست عالم برای عرش و فرشی چون در عالم جان افتادی از آن بی سای دائم می درخشی ده. که می گفتن پیغم سایه ندرخش چو دائم رحمتن للعالمینی بدان جرم دو عالم را ببخشی مم. چو تو بر طرز افلاکی به جز

چه داند تا چه نوری و چه نخشی فسبحان اللذی اصرا و عبده الالملکوت والجبروت کله اشاره به اون آیه میراج است فسبحان اللذی اصرا و عبده لیلن من المسجد الحرام الالمسجد الال العقس اللذی بارکنا حوله زهی سلطان دار الموک افلاک زهی تخت توعرش و تاج لولاک

قوزه زان آش کارا شد که یک روز کشیدی از اولا کوسی بر افلاک تو آن وقتی نبی الله بودی که آدم بود یک کف خاک نمناک اشاره به خلفتون نار و خلفتون نبی و کنتو اول نبی یعن فلخف

و آخره هم فی البعث یافتون نبیگن و آدم و قلیل مواهبت احادیس مختلف درباره این مطلب که پیغمبر قبل از آدم بوده هست زهی روز قیامت روز بارد خلایق سر به سر در انتظارد گناهکاران بر جان خورد زنهار همه جان برکف اندر زینهارد

تو مختار کل آفرینش که حق بی علتی کرد اختیارت چطور تو بر باد دیدی ملک عالم به ملک فقر آمد افتخارت که فرمود الفقر فخر بله به صورت چرخ از آن فوق تو افتاد که چرخ آمد طبقهای نسارت فلک زان می‌دارد با تشت خورشید که هست از دیرگاهی تشت دارد

خرا چون حارث و چون حاجب آمد ماه و خورشید در لیل و نهارت فلک با خاجگی خود قلامد چون لامی منحنی از دال نامد بلی کاینه اسرار گردد ز نعت خاجه اهرار گردد تو ایان که از یک شاخ نعتت دو عالم از تو بر خردار گردد

توی آن مرد که از نور وجودت عدم آبستن اسرار گردد توی آن سدر که از دریای جودت کفی و نمی امتار گردد دل من یا رسول الله خفده است دلی دربند تا بیدار گردد چکم گردد زه بهر بینهایت که یک شب نم دوری شهوار گردد

دل عطار را گرباردادی دلی بیدار رو معنی دار کردن بسیار خوب بله این که این که من گزیده کردم در اینجا بود حالا خیلی شده بسیار خوب اتجابه فرمایید که بعد از خسته شدن شما و شنواندگان از سخن بنده نه سخن جنبای پیجمان فرصتی هم گذشته از هنرمندان استفاده بکنید سوازی بشنوید و بعد خواهش از آقای بله. اینجوی و آقای استعدام

دوستان عزیزی که در این برنامه و به مناسبت این روز فرخنده و خوش دسته آواز میخونند و ساز مینوازند، دوست عزیزمونه که آقای سیاوشه که صدای گرمشونه میشنویم. بله بله. هنرمندان عزیزمون آقای مرتضی الله ملک با ویولون، آقای منصور سارمی با سنتور و آقای ناصر افتتاخ با ضرب آواز آقای سیاوش رو همراهی میکنن و خیال میکنم که

این جماعات اونرمند بتونن ساز آواز خوبی برای حسین خواهش میکنم در خلال از این بخرم ایدهای ای بیدکانی، بخرم ای ای ملک، بخرم دوستان خب

yojras se nalemastane toyee chalo ya

Cavill

بسیار گنگ چه بسیار به گفتی کس نیست به غیر صدایی می خوام کس نیست به غیر صدایی می خوام

I

آقای ملک، آقای سارمی، آقای افتتاق خوب خوندید و خوبم هم نباختید آقای اینجاوی رو میبینم که آماده هستم استدام کنم بله, بله. بله. یکی از ترکیب بندهای مشهور فارسی در نعت رسول اکرم ترکیب بند جمال الدین محمد عبدال عبدالرزاق اسفحانی است ای از بر سدر شاهراه هد

و ای قبعه عرش تکیه از این ترکیب بند چند بیتی از چند بندش بنده ارز میکنم و امیدوارم که مقبول طبع مشکل پسند شما دوستان و عزیزان و شنوندگان قرار بگیر ای حجره دل به تو منور و ای آلم جان ز تو معتر ای شخص تو اسمت مجسم

ویزات تو رحمت مصور بیاد تو ذکر ها مزور بینام تو ورد ها مبتر ای از نفس نسیم خلقت نوح فلک چو گوی انبر تو ایمنی از حضور گو باش عالم همه خوش یا همه تر تو فارقی از وجود

گوشو و تا همه سنگ یا همه زر تا ووس ملائکه بریدت سرخیل مقربان مریدت ای شرع تو چیره چون به شب روز وی ای خیل تو بر ستاره پیروز ای عقل گرهگشای معنی در حلقه درس تو نواموز ای تیغ تو

کوف را کفن باف نعلین تو عرش را کله دوز ای مذهب حاز مبعث تو چون مکتب ها به اید نوروز در اینجا اشاره ای هم noh. داره به آداب نوروزی nah. و تعطیل <charger> بچه‌ها <amiller> <verses 141> و تعطیل yeah. مکتب ها در ایام نوروز noh. و استفاده کرده از فولکلور و آداب رسوم noh. Noh. ملی و محلی

ای موی تو رنگ کسوت شب وی روی تو نور چهره روز ماه سر خیمه جلالت در عالم علم مجلس افروز بن مود نشان روی فردا آینه معجز تو امروز ای گفت صحیح و کرد تصریح در دست تو سنگ ریزه تسبیح

هر آدمی که او سنا گفت این بند آخر است نه که خطابی به رسول اکرم عرض میکنه نه هرچان نسنای تو خطا گفت خود خاطر شاعری چه سنجد نعت تو سزای تو خدا گفت در عمر هران چه گفت یا کرد نادانین کرد و ناسزا گفت

زان گفته و کرده گر بپرسند که از بحر چه کرد یا چرا گفت این خواهد بود عدت او کفاره هر چه کرد <تصفيق> یا گفت تو مهو کن از جریده او هر هرزه که از سر هوا گفت چون نیست به زاعتی زتاعت از ما گناه و زتو شفاعت

بسیار خب، به قول معروف طیب الله و فاک بله عرض میشه حالا موندن دوست عزیز و سرور گرامی آقای سجادی استاد بل. محترم دانشگاه بل. که ایشون تحقیقاتشون همطور که میدونید درباعی خاقانیه در ما استدامون این است که از ایشون بخواهیم

از نظر خاغانی و دفتر طب خاغانی رو برق بزنن بله خاغانی هم بسیار داره بله. بله. بله. و در باره محمد ابن عبدالله ببینیم بس. که خاغانی و اون سفرهایی که به کعبه کرده اون بهره برداری هایی که از خانه خدا و نور محمدی کرده بله. تا چه اندازهشون میتونه در این وقت به ده... فرماییم خیلی متحکر میشه ارز کنم که خاغانی همیشه بنده گفتم خب معلومم هست در دیوانش

مردیست بسیار متدین و واقعا متعصب در دین و می شود گفت که عشقی به حضرت رسول اکرم و خانه که و اصولا شاعر دین اسلام صحیح. می ورزد و به این جهت درباره باره حضرت رسول اکرم شعر زیاد دارد و بیشتر اشعارش رو شاید سعی می کند که

گریزی به مده پیامبر اکرم بزند یه نکتم قابل توجه است اون این است که عمویش ام. کافی الدین عمر ابن عثمان او رو حسان العجم نامیده است به مناسبت حسان ابن ثابت انساری که حسان شاهر عرب, عرب, عرب, عرب بود و در خدمت عرب. عزرت رسول اکرم و به اون مناسبت اسمش رو حسان العجم ال گفته و

و خودش هم گفته است که خواقانی که نایب حسان مصطفا است نه اصلا خودش رو به من نسبت این است که واقعا شعرش هم در همه موارد هم تو که عرض کردم یک گریزی به صورت دارد در اول دیوانش چندین قصیده است که عنوانش اصلا همون مدح پیامبر اکرم است و

از توحید شروع می کند و بعد هم به مده از جمله مثلا جوشن صورت برون کن در صفه مردان درا دل طلب که از دار ملک دل توان شد پادشا بلد. در این قصیده مدح پیامر اکرم رو دارد و قصیده دیگری که دو سه بیتش رو حالا بنده می خونم بعد می پردازم به چند شعر از یک ترکیب بندش این است

قصیده‌ای دارد در توحید و موضوع حکمت به این مطلع ای پنج نو به کوفته در دار ملک لا لا در چهار باولش وحدت کشد تو را لا اله الا الله افت و اینها و بعد اونجا پس از یک مقدار ابیاتی میگوید که توسندلی و راویز تو قول لا اله

اما وشی و قاعد تو شرع مصطفا با سایه رکاب محمد اناندرا تا طرق و زنان تو گردند اصیاب بعد به مدح پیامبر اکرم میگراید و میگوید که نطقش معلمی که کند عقل را ادب خلقش مفرحی که دهد روح را شفا

برنامده سپیده صبح ازل هنوز کو ورسیت سپیده ازل بوده پیشوا <تصفيق> چند بیت دیگر دارد اینجا بعد باز قصیده دیگری به این متله عروس آفیتان گرد قبول کرد مرا که عمر بیش بها دادمش به شیر بها در این قصیده هم باز مته پیامبر اکرم رو دارد

که در چند بیت مثلا فرض کنید میگوید که زبان سناگر درگاه گاه مصطفی خوشتر که بارگیر سلیمان نکوتر است سبا سناوی او به دل ما فرو نیاگد از آنک عروس سخت شگرف است و هجل نازیبا

و بعد همینطور سی... سپید روگ ازل مستفاست که از شرفش سیاه گشت به پیران سر سر دنیا البته زبان خاقانی معلوم است و بیانش و ترکیباتش اینها ولی از عهده ادای مطلب برآمده است و در هر صورت قصیده دیگری دارد سریر فقر تراف

سرکشد به تاج رضا تو سر به جای به در کشیده این خطا باز در این قصیده هم مدحی از پیامبر اکرم دارد که اگر وقت داریم بله که بله از این چند بیتی بفرما بله خواهم خوند و بعد میریم به قسمت دیگری البته در این ای که عرض کردم سریر فجر تو را سرکشد به تاوج رضا

اینجا به دنبالش آمده است و میگوید که اگر ذعآورزه معصیت شکست دلی تو را شفاعت احمد زمان کند به شفا به یک شهادت سربسته مرد احمد باش آه. به یک شهادت سربسته مرد احمد باش که پای مرد سران اوست در سرای جزا آه.

پیه سنای محمد برارتیق زمیر که خواست بر قد او بافتند در سنا زبان زباق بسته به مده محمد آورد نوت که نخل خشک پیه مریم آورد خرما و باز البته اطلاع دارید که در هر قصیده ای به اصطلاع شریطه ای دارد و اینها و این شریطه هم همونطور به دعا و سنافت میشود

و باز قصیده دارد طفلی هنوز بسته گهواره فنا مردان زوان شوی که شوی از همه جدا در اینجا هم باز به مده پیامبر اکرم می گراید و اون وقت می گوید که شاهنشهیست احمد مرسل که ساخت حق تاوج ازل کلاهش و درع ابد قبا اون قابل اماونت

در قالب بشر و اون آمل ارادت در عالم جزا چون نوبت نبوت او در عرب زدند از جودی و اهد صلقات آمدش صدا شفت. من به اجازتون اون چی که حالا میخوام بیشتر دربارش ارس کنم اینست که یه قصیده دارد و نامش رو منطق و تیر گذاشتن بله در علتش که در این قصیده

مطلع اولش وصف بحار است و این توصیف طبیعت و در مطلع دومش مرغان با هم بر سر گلهایی که دوست دارند مناظره می کند و بعد این مناظره رو پیش انقا میبرند که حکومت کند بین اونها حکم شود به اصطلاح. انقا به اینجا ختم می کند قضاوت رو و می گوید که

این همه نورستگان یعنی همین گلها بله. به اون مرغان جواب میده که قصیده چون مفصل است اون قسمتها رو نمیخونه ولی انقا این طور حکم میکنه این همه نورستگان بچه هورند پاک خورده گه از جوی شیر گاه ز جوی شراب گرچه همه دلکشند از همه گل نقصدر

کو عرق مصطفی هست ویندگران خاک ها احسنت بله گل قول قول محمدی گل محمدی قول سنب گرچه سنب. همه دلکشن از همه گل نقص تر کو عرق مصطفی هست ویندگران خاک بعد به مده پیامبر اکرم میپردازد و میگوید هادی مهدی غلام امی صادق کلام خسرو هشتم بهشت شهنه چارم کتاب بله

تاج ستان ملک تاج که از در او یافت عقل خط امان از اقا و این مدح پیامبر اکرم است در این قصیده اما قصیده بسیار عالی و گرایی دارد خاغانی که ردیف اون آورده و که رفته و خاک و رو آورده. در این قصیده میگوید که رفته است در سفر

حج خودش رنگامی که برمی گرده به مدینه مشرفه بله از که شریف بالین مقدس خاتم و نبیین مقداری خاک برداشته و با خودش آورده و به همین مناسبت ردیف قصیده رو آورده هم گذاشته و

اجازه بدید که حالا استدعا می کنید از, از بلندترین قصاید خاقانی است و،, و, و چون خاقانی تمام اشعارش رو سعی می کند با وسط صبح و آفتاب شروع کند و, و یکی بزه. به صبح و آفتاب و یکی به مسیح و ایسا غالبا اشاره دارد مادرش نفسی بوده این است که میگوید گوید که صبحوارم

آفتابی در نهان آوردهام آفتابم که از دم ایسا نشان آورده هم ایسی هم از بیت معمور آمده و از خوابن خورد خورده قوت و زله اخوان را زخان آورده هم هین ای خوشک پی پیرانه ترداب من که من هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده هم.

تفزی مکتب برد نان من ز مکتب آغمده بهر پیران زافتاب و مهد و نان آوردم گرچه ای ساوار از اینجا بار سوزن برده گنگ گنج قارون بین که از اونجا سوزیان آوردم هم رفته زین سر لاشهی در زیر و زان سر بین کنون کبلغ گیتی جنیبت در اینان آورده

اینها رو به تفسیر این آورده هم آورده هم و میگوید بعد میگه که داده صد جان جانبه های گوهری در من یزید ور دعالم داده هم, هم رایگان آورده هم. آورده هم اون وقت میگه که کیست خاقانی که گویم خونبه های جان اوست خونبه های جان صد خاقان و خان آورده هم. این همه میگویمت آورده هم باری بپرست

این همه می میهویمت آورده با هم بایل با بپرس تا چه گنجست و چه گوهر و از که کان آورده باز پرسی شرط باشم تا بگویم که این فتوح در فلان مدت ز درگاه فلان آورده

تو نپرسی من بگویم نز کسی دوز دیدم <تصفح> که از در شاهنشهی گنج روان آوردم یعنی امساور از سر بالین حاک مستقا حاک مشقاور بحر حرز جان آوردم خاک بالین رسول الله همه حرز شفاست حرز شافی بحر جان ناوتوان آوردم وقف بازوگ من است این حرز

نفروشم بکست گرچه ز اول نام دادن بر زبان آورده وقف بازوری من است این هرص نفروشم بکست گرچه ز اول نام دادن بر زبان آورده, هم. آورده هم. گوهر دریاوی کاف و نون محمد کستناوز گوهرم در کلک و دریاو در بنان آورده هم.

چون زبان ملک سخند آورد من از صدر رسول در سر دستار من شور زبان آورده هم بلکه در مده رسول الله به توقیه رضاش بر جهان من شور ملک جاودان آورده هم این قصیده بسیار بسیار بس بس بس بس خودش یعنی با این بیان حق دارد که بگوید که من سپهرم

که از بهار باق شب گم کرده هم روز نو را بین ترنج مهرگان آورده هم پادشاه نظم نصرم در خراسان و اراق کهل هل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده هم منصفان استاد دانندم که از معنی و لفظ شیوه تازه نرسم باقسان آورده اطرافم برای اینکه

تمام شعرهای بعد از خاقانی اقتدا به او کردند و او مقتدای تمام شعرهای قدر اول بعد از خودش بوده است اتفاقا حالا به تیمون و تبرک این مجلس گرامی و مجلس محترم یک فایده علمی و عدبی هم ببریم و این رو هم عرض بکنیم که یکی از شعرهایی که پیروگی خاقانی کرده و نظر به خاقانی داشته

اوهدی مراقعی است اوهدی افهانی وعد مراقعی است که در یک ترکیب بندی خیلی سعی کرده به خاقانی نزدیک بشه و اون ترکیب بند هم در مده و نعت رسول اکرمه اینجا باز مثل خاقانی آرزوی رفتن به کعبه کرده و زیارت مرغد رسول و با این بیت ها آغاز به سخن میکنه نه

حوس کعبه و آن منزل و آنجا مرا آرزوی حرم مکه و بد هاست مرا در دل آهنگ هجاغ زست و زهی یاوگی بخت گر یک آهنگ در این پرده شود راست مرا سرم از دایره صبر قرون خواهد شد شای در بکسلمین بند

که در پاست مرا از خیال حجر اسود و بوسیدن او آب زمزم همه در عین سوهی داست مرا اون وقت همینطور میگه و در این بیت ها زبان اوهدی به زبان و بیان خاقانی نزدیک میشه عمر بگذشت ز تقصیر هزار باقید کرد

بردر کعبه اسلام گذر باید کرد ناگذیر است در اون بازی از خوشک لبی تکیه برگریه این دیده تر باید کرد گردریگی که از آن زیر قدم ها ریزد سرم همه در دیده سر باید کرد آب و نان و شطر و تشویش دل است

خورده اون مرحله از خون جگر باوید کرد همینطور میگه نه. و میگه تا میرسه به اینجا که یا رب امثال بدان رکن و مقامم برسان کام من دیدن کعبتو به کاو من برسان دولت وصل تو هر چند که خاکست دمی آمگردان و بدان دولت آمن برسان صبرم از پای در آمد

تو مرا دست بگیر به سر تربت این صدر من برسان چون هلالر بپسندی که به مانم ناقص به جمال رخ اون بدر تمامم برسان گر بدان روز گذارت بوده باود سبا ارزه کن عجز و زمین بوب سو سلامم برسان بوگ اون خاک دمی گر برها ندز به نسیم خوش اون روزه درائیم زخاب

بعد خطاب به رسول اکرم می کند و میگوید گوید ای روخت قبله احرار به گردانیده شرک را گرد جهان خار به گردانیده سکه شرع تو را قوت این دین درست به هر اقلیم چو دینار به کافران جمله شوق سر زلف تو

کمر در میون بسته و زنار بگر دانیده روز هجرت بلاب دهنش خسم تو را و انکبوب تیزه در غار بگر دانیده توفه را و هر سهری

باود سباو از سر لطف بوی زلف تو به گلزار بگر دانیده و همین تورمد رسول اکرم رو ادامه میده و در بند بعدی میگه بوی مشک از سر زلف تو به چین آوردند بود پرستان خطا روی بدین آوردند آن عروسه است کمالت که سر انگشتان در قمر و اسمت نقصان مبین آوردند

لشکر تره هندوی تو بر اهل خطاب ای بسا صبح که از شام کمین آوردند و بالاخره تا حدیث تو نمود احل معانی را روی رخنه در قیمت درهای سمین آوردند دلشون سخت و سیاه

چون حجر اسود بود مردم مکه که در مهر تو چین آوردند برق دل گرم شد از غیرتو بگریز چو ابر اندران شب که براغ تو به زین آوردند سر معراج تو را هم تو توامی گفتن در دمی بود و از آن دم تو توانی گفتن بله, بله و بعد هم به رسول اکرم توسل می جوید و

و ترکیب بندش رو تمام می کند خب جدا از این عبیات ابکار و قصائد قررا لذت بردیم و شنوندگان هم بحره بردن به خصوص که با نام نامی محمد ابن عبدالله و سلسد. پیانبر بزرگزوار زیند یافته بود حالا با کس اجازه از شنوندگان گرامی بدینجا به سخن خود پایان می بخشیم و آرزومندیم که دلتان به مهر محمد و آلش

گرم و تابنده بمانده بمشه. روش بخیر